دوستان در گفتار پیشین سخن از آغاز مصنوی مولوی است که میگوید بشنو این نی بشنو نی چون حکایت میکنه نه بشنو از نی چون حکایت در روزه اصلی هست دشنو این نی چون حکایت میکنه و گفته شد که در فرهنگ سی به انسان به طور کلی نی گفته می شده واجه اوز و از که نی به معنای انسان بوده انوز خردها و منکرانی ها به من از نیست هر انسانی نی بود فن نام خدا نید نای ده بود که همون یعنی سع اینا ای باشد و نام دخترش رام بود که در عربی لحره خوانده می شد و در و نظر احمقار رام جید. یعنی رام مینوال بوده است مثلا رام جید. همون رام چید هست که چید چید شید همش معنای نی برند مثل ترشید که ترشید باشد به معنای نایی زنده نیکن که ترش پر، ترش همون کلمه انگلیسی و رفتریش آلمانی ترش کرد و این به معنای نای زنده کننده خدا با مواقع نی که آن را می آفرینند انسان و خدا هر دو تا بندهای نی هستند که پس دیگر رو بیدد چون یکی دیگر از دیگری میروید نای تصویری است برای خودرویی خودزایی خودآفرینی خودنوازی نای خودش خودش را مینوازد این تصویریس که آنها داشتند نای خودش حکایت میکند در مورد انسان تن انسان نای هست. و جان انسان که این همانی با باز داره نینوازه تو که باز در فرهنگ ایرانی نوای موسیقی بوده بوده پس بنابراین جان نیه نی تن را می نوازه در درون مولوی در درون تو مصرد در درون تو مصرد هست چه دهی کمر به مصرد نکم است نز نایی یعنی یک نی نه کم است چن زناعی نه نا است چون زناعی یعنی نینواس البته ما امروزه معنای نایی را در محدوده بسیار تنگ میفهمی مون نی در فرهنگ ایرانی رد یعنی رئیس رد یعنی نمونه اعلای همه گاهان و طبعا همه آقری نمدگان که مرده می شود. چون جهان همه یک درختی بود که می روید طبعا رد همه عبدارهای موسیقی شمرده میشد می و چنگ و بربت و برقنون و اون همه نی بودن نای نواختن نای سرودان باشد معنای موسیقی نواختن و موسیقی به طور کلی داشد از آسان موسیقی از ریدیشه نیش تاخته شده واجه شناسان چنان میپندارن که واجه موسیقی از یونانی به عربی است و سپس از عربی به پارسی این بدان میمانند که ایرانی ها پیشتر موسیقی نداشتند در یونانی واجه موسیقی موسیقی در لاتین مودیکا. بوده ولی این اشتباه در اثر نشناختن فرهنگ زن خدایی ایران شده است و می شود موسیقی موسیقی, موسیقی، که پیشمندش باشد مو به معنای است به به معنای همون سه, سه، عدد سه است که این چونان ما می گوییم مویدم یعنی نوای نی یا نالی جن. یعنی نوای نال نال همون نیست افخان ها همون نی نال میگوید سه و چی همون عدد چه هست مثلا موسی و موسی به معنای سه یعنی سعینا یعنی سی مرح نای به نام دیگرش نای به در بلوچی به سلمانی نایی گفته می چون با نبی تیزه نید و موی سر را میتراشند. این است که در عربی هم به اتره یا تیغ دلناسی تیغ سرسراش موچی می دمید. که در عرب هم هم نید شنان چه اتره هم هم نید در کردی اتران را به ترانه می دمید. نام رسول یا از اسرائیلی ها که موسا باشد به همین علت همین موساست چون که یعنی معنای سعینا یعنی سیمر موسی موسا یعنی سیمر. چون در مدین از تبرزنش که پیرو این دین بوده این نام را گرفتن مثلا در مد... مدین در کوه سیمر یعنی کوه سیمر. سعدی در موسا میگوید به با هم عمر و قومی سرش کرد چون دست موثاف بیت به همین علت موش بنابر باقدمنامه نازمان اتف به معناع به دست آوردن مطع از دهدان ماتر مادرش، چون دهدان هم به ویژه نای است چون دهدان اصل آفریننده به شمار می رود. در پارسی، زال موسیه به سازی میگویند که بیشتر زنان که بیشتر زنان مینوازند از همین ریشه وایه موسیخار ساخته شده است از همین وایهٔ موسی بنابر برهان قاطه موسیقار سازی معروف که آن را از نیهای بزرگ کوچیک به اندام مسلث به هم ورض کردند یعنی ستا ستا یا میآید در همون برهان قاطع میآید که سازی است که درویشان نوازند اساسا درویش که در عقل دریخوچه است به معنای سه خوچه که باز نام سیگرغ یا خود واجهٔ صوفی در عکس آنچه در کتابخانه نوشته شده به معنای نی نواز است که سوف نی نپاش ایدامی میآید که موشیغار سازی شمالان می نوازد به بداخره می که نام پرندهی یعنی موشیغار که در منقار او سوراخ بسیاری هست و از آن سوراخها ها آواز های گنابون بر آید و موسیقی از آن مخبوض است. همه این گفته ها درست هستند. و این عالت ترکیبی نی یعنی سه تا نی با هم باشه سه تا سه این را در آلمانی پانفلوته میگویند که ها داشتند و داستان مربوط به این پانفلوته که مربوط به همین خدای ایران میشود در گفتار دیگری خواهم آورد این واژه موسیکار باید ترکیبی از موسی گر باشد چون این پسمندش در و گرا و قرو همه به معنای نی هستند مثلا شادغر یعنی نی مقصود از این بررسی یا دراز این نیست که فقط اصل واژه موسیقی نشان داده شود بلکه مقصود آن است که بیان شود که نی نواختن و بانگ به طور کلی معنای نواختن موسیقی با همه ابزار موسیقی را داشته است موسیقار نام خود سیمورغ بوده. یعنی خدای موسیقی شنانچه نام دیگرش اش می باشد بغنوس مرکب از کوخ نوس یعنی دینی کو هم یعنی نید به معنای آن است که دینیش یا منغارش نید و منغار او به اندازه روزهای سال چوراخ دارد و هر روزی جهان را با نوای دیگر می آفره. و در فرهنگ ایران مواختن نی به این معنا با قنگ نی با آهنگ موشیری جهان آفریده می اینکه در ادبیاتمان ما لحظه نخست زمان را ازال مینامند نامند روز نام خود این زن خدای نینواز و موسی زن بر. که در آثار مولدی فراوان می در مقدمتون عدب خوارزمی دیده می شود که عدل به معنای دختر باریکنیان است واجه عدل مرکب است رو واجه عد و عل است که ما در پیش گفتیم عد به معنای نه هست و عل این زن خدای زایمان را ال می بذارم. پس بنابراین قنابراین به معنای زن خدای نای جان زن خدای چه چشم گفشا جان میگر تشروی جانان میبرم پیش اون عید عدل جان بهر قربان میبرم و دانستن این مقدمات اکنون به بررسی این قدر از مولوی پرداخته میشود که میگوید ای درآورده جهانی راز پای بانگ نای و بانگ نای و بانگ نای ای بانگ نای ای درآورده جهانی را دوپای چیس نی چیس نی اون یار شیرین بوسه بوسه جای بوسه جای بوسه جای جا. اون برای اون یار شیرین بوسه که رام هست این نی جای بوسه البته واژهٔ بوس هم در زبان فارسی به معنای نی است اونی بیدست و پا بست از خلق دست و پای دست و پای دست و پای اون بیدست اون نه بیدست و پا بست از به خلق دست و پای دست و پای دست و پای نی بهانه است نی بهانه است این ندار پاینده نیست نه است. این ندار پایین نیست الا بانگ پر اون اوما. این آهنگ این نباورید نیست الا بانگ پر اون همون خود خدای است خود خدای است این همه روحش این بانگ پر اون همون خود خدای است این کشد آن خدا رو صدهاست که محتویات این ها با کاربرد مفهوم تشویه و تمسیل و کنایه گزارده و تعبیل میشن گفته می شود که اینها تعبیرات و تمصیلات و تشویهات شاعرانه یا صوفیانه است شاعر با قدرت خیارباکیاش آنها را برای بیان احساسات و افکار و ترداختن البته در همون بیت نخست میبینیم که مولوی میگوید ای بانگ نای ای آهنگ و نوای موزیری جهانی را از پای در یعنی مغلوب و چیره ساخته ای البته همینجا در بیت دیگر میگوید از خرد دستوپایشون را ستاده اید و مغلوبشان است که همه را به حرکت و رقص با آهنگ خود بسانده او را همه او همه را به بس، سوی او همه را به سوی گناه میکشد بر ضرد دفع حکم بر ضرد دفع حکم این خل همین رخشن یه ترده تو رخی یک ترده نمی نمی دانم که در گفتارهای بعدی خواندید از همون واجهیست از همون معنای نهی میدهد چون که پرده را از نی می در دردی یک واجهیست اصلا برای نی و این کلمه در عویستا برمگذر به تره تو که اینها همش معنای نهیست آواز دفع تنهل در این لخص جهان پیدا تنهل اومدان خارش هر جایی که میخوارم مگر مولوی نمیده نمی است یا نمیدانسته که در سراسر جهان امروز حتی جهان امروز اسلامی در همون گسترهی اسلام وانگ نایو موسیقی شیره در اندیشه و احساسات و معنویات و فرهنگ نبوده و نیست بود مولوی در قضلیاتش میگوید که در ری اهل ارخان برای شنیدن سما در زیر زمین ها و گود آرها که کسی انجام می میکنند مردمان برای سما به قارهای خارج شهر میرسند آیا در این جهان موسیقی هم داشت انسان را فراغیدد و از پای و به تایبه بینگیدد یا موسیقی میتوانست مرش و روح و روان را زبرید از خود کنند یا موسیقی جای قرآن و کتاب مقدس را بگیدن این تشکیه نیست این اندیشه ها نیست این اندیشه ها به اسطوره به افتره ها در عطب معنی که در اسب معنای نی و ترانه نی هست بر میگردن افتره سرانه ها و سرودهای های فرهنگ سی مردی بودند و تبایی اسطوره معرد آن و آقای طالعانی می که این واجه از سطر است. البته این به کلی است هست مولوی می که آهنگ نی چیزی دوزبانگ فره نیست و آنگاه را فراتر می روید. و میگوید این باند پر همای بال خداست اینها را به تشویهات و تمصیلات و شاعرانه کاستند و معانی عارفانه از آن گرفتند ریشکن کردن فرهنگ ایران و خود ارفان است و, می... و میان تشویه شاعرانه و تصویر و نقش اسطوره فرق بسیار هرچند که صورت های یا در زبان فارسی گنداده ای انگیزاننده شعر ها بودن بودن خوب است که نگاهی کوتاه به تشویی و تفاوتش با صورت با صورت ها یا گنداده ها بیاندازی. چون بدون در این این تقاوت ترهنگ ایران را نهاییم توانه بشناسیم تشبیه اصاساً برای ما امروزه کمکی برای ملبوح ساختن یک مفهوم یعنی حاشیه است فرعی س مفهوم وقتی کسی مفهوم را یا یاد به تشویه دیگر ندارد در حالی که تصویر اسطوری بنیادی است و مفهومات تراشهای آن هستند حالا برای خاطر اینه که این اندکی این تفاوت تشریح و صورت اصورهی نقش اسطوری مشخص می شود من دو مثال می که این تقاوز تشکیه اصورت را ما در تمام این گفتارها رازم داشت. مثلا به علی نخستین امام شیعان شیر خدا گفته می شود. که ترجمه افدالله باشه در این شکلی نیست که این دقض صفت بسیار بزرگی برای این امام هست این یک تشقیه است علی مانند یک شیر است یعنی نیرومند و دلیل است البته شیر خونخارو در رنده هم هست ولی این در این تشغیل این نیرومند و دلیلی شاید جدا ساخته میشه این صفت ویژه شیر جلب نظر اعراب یا یونانیان را کرده بود این بود که به هراکلس یا هرکول پوست شیر میپوشانیدن یا در روی سکه های یونان سر اسکندر میان سر شیر است که نشان داده شود او همان هرکول است در همین راستا مسلمانان هم علی را اسد الله میخوانند ولی ترجمه آن در فارسی به شیر خدا نابود نابود ساختن فرهنگ ایران است چون الله اسد را خلق میکند ولی خدای ایران خدا در عرض او دایه, او دایه. یعنی دایه به یعنی شیر شیردهنده به نه خالق نه آفریننده شیر شیر در فرقنگی ایران جزب جانوران زدارکامه یعنی ترکاشگر و متجاوز و خونها رو در شمرده میشود می شیر جزب گرگ سردگان بود ایرانیان وقتی میخواستن اصل بود و پرخاف و قشم و خونخاری را یا ویالنس و گبالت را عبارت بندی کنند میگو... میگوستن گرگی که مجموعه همه گرگ ها که از بچه شیر آنها بود این و این در ضد اصل قدافت جان بود از این رو رستم که متنازر با هرکول یا هرافلس یونانی میباشد هیچگاه پوستو شیر نمیپوشید بلکه ببر بیان میپوشید ببر دیور است که سگ آبی باشد و بیان بر آن است یعنی سگ آبی منسوب به خداست این خدا چی بود این خدا آناهیطا بود سگ آبی مانند سگ زمینی اصل دفاع از قداستیتان یعنی هرچی از انسانها را از گذنگ و آدار از گذنگ و آدار باز می به همین علت به سپاه سپ... و... به نام سپاه داریم. سپاه یعنی سک از دید امروزی ما به که نگاه میکنیم کنیم دیگر در ایران شیر اصاس کار بوده سگ که پاسبان جان بوده این به این علت ستوده می شد آناهیتا از خدایان قصاصت جان شمورده روستن که این جامعه را می نشان میداد که در پیکار در جنگ در نبرد، فقط محمول و قدعه قداست جان انسان است او به چهاد دینی نمی رفت. این برزده که مفهومت بود وقتی اسکندر به ایران آمد فوست شیر را کنار گذاشت و جامعه بیوه را پوشید تا تعلیم از ایرانیان کرده باشد بدون آن که فرهنگ این اندیشه را بشناسد به همین علت به همین علت یعنی برقایه این مفهوم فردوسی میگوید هنر نزد ایرانیان است و بست ندارند شیر جیان را بکست این از جان قداست جان و دفاع از هر جانی کردم این هنر است این تنها هنری بود که ایرانیان به آن افتخار می با آلودگی ما با ذهنیات عربی و یونانی روشن اکران ما به این شعر و غرور در بیمعنای ای ایرانی می و ایرانی با فردوسی رو مسخره میکنه در حالی که از فرهنگ ایرانی بیخبرن که میگوید قداست جان و خرد و تعهد اخلاقی به دفاع از قداست جان و خرد هنر هر ایرانی این جان خرد گسترش جان در فرهنگ ایران. این است که قداست جان برابر با قداست خرد هیچ خردی رو نباید بازون هنر به معنای فضیلت و یا در راکینگ ورتو و در یونانی ارتا که همون همای ما مان این خون به شیر درنده در و پول خاروده دار کامه وقتی نمیگذارند. نرا این ش ارزش اجل به شیر نمیده. هست. حالا یکی اون که این ازصد دلار را تجمه میکنن به شیر خدا این کارغ هم است خدا با شیر سازش ندارد الله با شیر سازش دارد اما با عسر سازش دارد اما خدای ایرانی با شیر سازشی ندارد دیگر که این تشبیه در یونان و اسلام یک ویژگی شیر را نشان است که مرغوب و مطلوب است ولی همون تشبیه در تصاویر اصولهای ایران نمی نمیگنجد و در تضاد با فرهنگ ایران و با خدای ایران است این از که پارسی نویسی در پارسی نویسی باید رعایت شود به جای افتادالله نباید شیر خدا کنید باید همون الله کنید تشبیه شاعرانه دیگری که هنوز بسیاری از روشنفکران انتکران ما رو قبضه و فلج کرده است تشبیه شاعرانه زیر بنا و رو هست این تشبیه را مارکس از بنایی گردن و برای بیان روابط عوامل اجتماعی با هم بکار است البته من الان از این گسترش این ایده میگذارم که تصویر بنا در فرهنگ ایران به کلی برخلاف تصویر بنا در قربه ولی برای مارک دادی روابط حکم زیر بنا را دارم بعضی حکم رو بنا البته مارکس در این تشبیه دقیق نشده و بیشتر کمتر یک مفهوم است و بیشتر یک تشبیه است تشبیه شاعرانه چون که مقصودش از رو بنا تزمینات خارجی و ظاهری بنا هست که آنها را بیاهمیت اهمیت البته فرهنگم هم همین هست روابط تولیدیه اقتصادی زیر بنا و فرهنگ و اندیشه و دین و هنر و فلسفه و غیره روی بنا یعنی تزیینات خارجی است. این تشویه شاعرانه که در ویژگی خاصی روشنگر است در عمومیتش دیرانگر و مخرب میباشد آیا عوامل اجتماعی را میتوان با این تشویه فهمید هستند این خودش یک ای سؤال هست. و آنها چنین ای با هم دارند این را باید در جای دیگر بحث. از این گذشته رو بنا که تنها هضینات روی دیوارهایش نیست. همه انسان ها در اتاق ها و یعنی ها که آنچه روی بناج زندگی میکنند نه در زیر زمین ها پس همه انسان ها که در رو بناها روی بناها زندگی میکنند رو بنایی هستند و همه انسان ها و ماشینها که زیر در زیر بنا جا میگیرند زیر بنایی آنگاه این تشبیه شاعرانه تبدیل به یک مفهوم علمی شده و علم برای ایرانیان ناوان امری مقدس کردیده کنیشه دفع از قوانین مقدس علمی میدم در حالی که علم شک روشی است، شک است روش اندیشه برقایه شک کردن و آزمودن از نوع هست هنوز یک تئوری برای تفسیر تجربیات ها ساخت نشده رد می شود و تئوری دیگر از نوع به جای اون گذاشته می شود برای ایرانی فرهنگ روبنا نبود و کاملا در نقطه مقابل این تشبیه قرار داشت فرهنگ در ایران اصلا به معنای قنات و کاریزی بود که در زیر زمان در زیر زنی می جوشد. که آبی که در آن می و از آن دیرون می آید تمام آبادی و مدنیت ایجاد می شود فرهنگ زیر بود چون آب در فرهنگ ایران یعنی خود آب آبونه است در فرهنگ ایران مجموعه همه شیره و خساره و عبشوره ها شمورده آب و هر و هر هر, هر چیزی و هر حقیقتی بود آب و شیره و عبشوره که عبش احشه عاشان یعنی عتبه یعنی شیر در اعقاب و شیر و افشر حقیقت به شما میرم از این رو از این رو مولوی میگوید موج دریای حقایق موج در جای حقایق که بر کوه قاو ما جوش برابر که ما کاریزی انسان کاریز است و موج در جای حقیقت از این کاریز نیست انسان کاریز نایی که در درونش حقیقت میدوشد و موج میزند ببینید حقیقت در کتاب نیست در کتاب مقدس. حقیقت در خود از خود انسان میدوشد موج جای حقای که دند در کوره زن ز ما جوش برابر که ما کاری دیم او که میگویدد تون آب تو جان نقش تو جان نقشهایی کاریز و قنات و فرهنگ یک ملت, ملت می جوشید از ملت خاریز و قنات و فرهنگ از یک ملت می جوشید. فرهنگ روبنا که نبود سرچشمه روشنده حقیقت شمرده می حالا این روشنفکران میآیند و چند کتاب از دانشمندان قرب را در پیش خود میگذارند و تعریف و فرهنگ یا کلیفور را از آنها استخراج می کنند و با این معیار یعنی با این تعریف می آین به سراغ فرهنگ ایران و می که فرهنگ ایران را در این تعریف های تنگ و سطحی بگون ببینید از فرهنگ ایران چی باقی می حتی روبنا این گایید که فارسی شده به معنای ست و هم با فرهنگ ایران نمی کنند امروزی به جای با سطح و ظاهر میگذارن رویه رویه در ارهنگ ایران که همان چهره باشد اصلا معنای ظاهری و سطحی را ندارد چهره که چیتر را باشد به معنای ذات و گوهری که در ظاهر پدیدار میشود یعنی پدیدار این همانی با گوهر دارد این اصلاً با معنای مثلا داهری و باطنی که در عرفان و سپس در کنی آمده است اصلاً اداره ما فرسخت دور است ببینید این واقعه ها اصلا اصلاً این اصطلاح ها که با هم آورد این به کلی با تشبیه روح و ناوزیر بنا فرد دارد پس برای درک اشعار مولوی روش تشبیهی و تمثیلی را به کار بلکه در اشعار مولوی تصاویر و نقشهای اسطورهای یعنی ای ایران را میابید حالا بند ای این را من یک اشاره کوتاه می‌کنم، بن داده از بن میاد یعنی چیزی که از پیدایش از بن است این واژه را ایرانی به جای اسطوره بکار بند صلمه اسطوره را اصلا بکار کار بن داده یعنی روش پیدایش از اون. این به کلی درک مطالب اون چیزی رو که برای ما به عنوان این روزه دنامه حسوره میمانه این فید درک پیدایشی از اون بود از بود اصلا به معنای حسوره حکایت داستانی رو که این روزه میشود تحریر میشود نبود مولوی گوید این نه این بانگ نه نای بانگ پر هماست و بانگ پره هما همون خداست در, ای ارتافرورد ارتافرورد همون هم در این که سیمور یا ارتافرورد ارتافرورد همون فروردین این بوده ما در اینکه که سیمور یا ارتافرورد نای به و وای به باشن این را از آثار موجود می تشخیص تشکیز بزنیم بعد در فرهنگ ایران که ایجاد جان میکن که از اون جان پیدایش میان موسیقی باز به نای به یعنی باز به یعنی تمبوج موسیقی میدانیم که خدا در ایران نای است و نام دیگرش همون خوز بوده که در مکه خوزی شده مثل اینه که نام خوزستان و حوز شروع می شود این که این همون معنای نگارد یعنی شهری که قرار نیه چون که یه شکر اونجا زیاد که نام دیگر بانگ که نام دیگر شیمرتن در کردی خوما خانده می و معنای خداست محطمان خورت میگویند می بکو یعنی خدا بکنن یا اومای دانون یعنی خدا می دانن. به خوم باوجود یعنی به امید خدا البته خومه به معنای خوم ولی بلی خوم فرابر برهان قاتل به معنای نای روبین کچی است. علت این بود که نای همون زهدان بود که در آن تخم و زنده می شود در داستان ها خومه هما به خمای همانی مشهور یا یا همای همانی خمانی. یعنی, یعنی همای نینباس از این رو در پهلوی گراو که نی باشد گراو نی باشد گراو به معنای بهدان است و در آلمانی گراو به معنای غبر است به همین علت بود که در ایران مرده را در خوم که این همانی با نی و با دهدان داینده یه داشت تا اثر بنده شود حالا رد پای همین هوما در ترکی هم باقی موندن چون که در ترکی به هوما لوریغوش یا گوگدایتو می بیان لوره, لوره آواز نی یا ترنوم است. به همین علت نام لورها نوای نه یعنی نوای سیمرغ است. و لوری خوش به معنای مرگیش که نه می نوازد و بوک دایتور هم به معنای زن است که نه نوازد چون که بوق همون چی همون نهید و دایتور دای همون دایتیش که در انگلیسی یعنی خدا خوبا خودش نهیست خودش نهی خود را می نوازد این من اجازه می که این واجه را با دقت روشن کنیم چون که اینها خیلی اهمیت دارند در اثر اینکه که را زدن ولی در این واجه ها را همه باقی موند هوما در عدستان هو مایه این دو گونه قابل تجیه و هر دو درست است یکی هو و دیگری هو مایه هو مایه هو یعنی به مایع یک معناش به معنای مادر است یک معناش به معنای آب است هو مایه یعنی مادر یعنی مادر نی هوم مایه یعنی یعنی افشره و آب هوم اون همون کلمه هوم هوم یعنی نه است اینکه این در روایات زردوشی این یاه زردی به جای هوم گذاشتند این تحریفات بعدی بوده چه شده خوم ازاسا به واژه نی گفته می شده این اون یعنی شیره نی عشق و خقیقت و عشق بوده هست. حالا ذهدان آگاه یا جا جای تنابوش جان جانست مانند خاری دوکانات و چه چنان در خوردی به حیف یعنی خون قائدی دین ماری گفته می شود که آب و خون نای باشد چون که این دین کلمه دین که به معنای مثل دینی یعنی نه مایی یعنی همون آب از دین آنها جهان از آخون یعنی در دنیای گذشته حتی در زبان فهنبی آخون یا خونا از جهان از این ساخته می شود که این آفون یعنی شیره نی برابر با آواه نی, نی. چون که نی تو چیز داره یکی آوا هست یکی شیره هست علت هم این بود که هم آو و هم باز هر شکلی بگیرم به آن شکل در نمی آین. در آن شک تحریف نمی که به این شیره دنیا این حقیقت این اون عشق این نظم مثلا یکی از معانی عشد نظم است قانون است این نظم این نظم کیهانی این نظم اجتماعی این حقیقت دو فرم دارند یا باد است یا آب است و اینها در هیچ شکلی تثبیت نمیشوند در هر شکلی گریستها و بیشکل ماند این بود که در فرهنگ ایران حقیقت در هیچ صورتی تثبیت نمی‌شد منجمد نمی‌گرد این بود حقیقت و عشق و نفس کتابی نمی‌شد تثبیت ابدی نمیشه، سنگواره نمی‌شد حالا این فکر این فکر در گستری بست... بسیار زیادی در اشعار در اشعار مولوی شکل خود گرفتن که،, که ما با به آنها بپردازیم مثلا من یکی را مورد توجه قرار می‌دم میگوید بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد برای مکش توچو تیگرش که از کمان بگریزد از این رو در فرهنگ ایران همیشه باید از نو حقیقت و عشق و اندیشه و نظم را جز یکی نظم نمیشود برای ابدیت بود همیشه باید از نو این نظم این قانون را حقیقت و عشق و زندگی و نعض و خرد در هیچ صورتی به نقشی یخ نمیبندند. کتاب و قاموزی مقدس نمی شود. از این خدایان ایران خدایان جستجو و خوابش و فجوهش بودن هیچ کدام خدا خدایان ایران همه دان نبودن یعنی دارنده کل علوم روح محبوظ نبودن و پس از اون به دیر دامن نطفش که ناگهان بگوریدد ولی مکش تو تو تیرش تو و تیرش که از همون بگوریدد چه نخش ها که ببازد چه هیده ها که بسازد به نقش ها در بازد زراق جان بگورید در آسمانش بیون شمه در آب بگورید در آب چون که در آبید به آسمان بگوریدد در آمکانش بخوند نشان دهد به مکانم چو در مکانش به جویید به را مکان بگریزم از این آن بگریزم به ترس نیز ملورید که آن نگار لطیفم از این آن بگریزم گریز پای تو بادم گریز پای تو بادم به عشق گل نگری که به باد خزانی به بوستان بگریزم گل باید نبایدی فراموش کرد که گل به خصوص گل سرخ از فونکه بایده گل به سرخ فرد که با کار برده می شود به گل سرخ اطلاق می شود به این در ترهنگ ایران این همانی با سیمور دسته سیمور گل سرخ بود چنان گریزد نامش تو خصل گفتن بیند که گفت نیز نتانی که آن فران ده گریزد چنان گریزد از تو که گر نویسی نقشش ز لوح نقش بپرد ز دل بهشون حالا نگاه کنید این فلسفه با حلسطهی که با امروزه از حقیقت ثابت از شریعت از قوانین شریعت داریم این بادرگوریدنده یا همون رام رمنده خدای شناخت و دانش و خدای موسیقی و رقص و خدای مدنیت و خدای جهان آرائی یعنی جهان آرائی یعنی سیاست که این در واقع یعنی این باد گریدن این رام دخترش نخستین پیدایش سیمر و سیمر نخستین چیزی که زاده می شود و دانش و خدای و موسیقی و رقص و شعر حالا این حقیقت در فرهنگ ایران با تدیروبه های فرار و گریزنده و رمنده کار دارد من برای اینکه این مسئله رو اوشنده شود یک اشاره کتایی به این باجه باد می چون که این درست گفتیم که این باد که همه بود باشد و این آب این گوهر حقیقت گوهر هر می از این رو هم که گیاه روز گیاه هر روز یک گیاهی یک کلی دارد که این خدای اون روز، این همانی با اون گیاه دارد روز. گیاه روز بی با آدم روز هشتم به این روز نام دیگرش خرم بوده صادرنگ است صادرنگ اول روز نوزدهم که روز سیمرغ اول با بادرود جان که که نام دیگرش صرغ است که متوجه باشید که حافظ وقتیدم از سرخ میزند نام از این رونیز هست که در روز 22 و ما که روز بعد است روز اقتران یا عشقورزی حلال ما یعنی رام با خوشهٔ پروین است و از این اقتران است که بنابر جهانگینی ایرانی جهان پیدایش میآمد وقتی خوشهٔ پروین در, در حلال ما زهدان رام قرار میگیرد از این جهان پیداش میشد این ایده بوده که هنوز در روی سکه های ساسانی همیشه میبینید حرال ما فقط خوشه پری قرار دارد اکنون میبینیم که همین روز را همین روز بیست و را مردم می میخواندند که به معنای نای دوستن اس بین نای دوست چون با این با این همانی دین با چون همن دین معنای به معنای نه است چون دین همون معنای بین و به معنای نه است بعد که در فرهنگ ایرانی موسیقی و آهنگ بود روز اکثران حلال ما با خوشه پروین در باره این روز ستش به طور گسترده سخن خواهد مخصوصی که البته این است که فراموش نشد از روز 232 و روزی که بعدان محیحی ها تولد مسیح نصف دادن در صورتی که این روز پیدایش انسان و جمشید میدن این در این روز ما سپس در گفتار دیگر به طور گسترده سخنهایی بود مقصود این است که عشق و جان و حقیقت با تموج با یعنی با موسیقی و آب، یعنی اون چیزی که آف است از خاردشتن صورت پذیر نبودن ولی در صورت تدیر بودن ولی در هیچ صورتی ثابت و مندمت نمیشدن هر صورتی به خود مثل آب، در اون صورت دامت نمیشدن میبینین که این یار انسان که چنین بازی یعنی چنین هم بازی موسیزی که آهنگ موسیقی بود بعدش تبدیل به فوج میشود یعنی, یعنی آهنگ از در آهنگ موسیقی از او هست و تبعید می شود و بخش دیگرش که فوت هست باقی میماند ماند بخش موسیقیش و آهنگش هر و تبعید می شود و فقط اون بخش فوت یعنی ریش باقی می ماند این واژه در عبری رواخ که همون معنای فوت بدون موسیقی و نوا می شود که بعدش همین واژه تبدیل به روح می شود این واژه امروز که روز روز روح بوده. در حالی که همین بایه روح که در فارسی روح بوده معده معنای است و بایه روح در فرهنگ ایران به معنای یک دستگاه موسیقی و هیچ ربطی برایند دیگر روح داده یعنی در بخش در فرهنگ ایران معنای باقی مانده است حالا باد و نه و آهنگ و آواز در گون یک تدیگه از هم جدا ناپذیر بینند که می آفریدند این تحصیل که باد مریم را آبستن می کند یا در وزیدن به درختان درختان را و, و آبستن می کند در مولوی فراوان است البته این باد و خود و ریح نیست بلکه موسیقایی است که باستانده می شود حالا من از اینجا این میخواستم که برگردم اینی که خدای ایران رپیتاوین که در پحلتی ریفتن میگویند این چگونه با موسیقی در نیم جهان را می و این داستان رو در گفتار بعدی دنبال خواهم کرد چون که این رپیتاوین یعنی دختر جوان نینواز هست که جهان را با گنگ نایی می و تمام اشعار مولوی به این داستان در دردند که در گفتار بعدی ادامه داده فرم شد خوش و خورم